برای اینکه شما بتونید موضوع پریزاپوزیشن ها یا پیشنگاره ها رو خیلی خوب متوجه شید، باید کم کم چشتون، ذهنتون عادت کنه به اینکه مثال های زیادی دیده باشید، به سادگی بتونید اطراف خودتون توی رفتار ها یا اعمال یا افکار خودتون اونها رو پیدا کنید و در نتیجه اینطور هست که میتونید از تونل های واقعیتی که ساختید و روی همین پریزاپوزیشن ها یا پیشنگاره ها استوار هستند به صورت خودتون رو نجات بدید من یه سری مثال میزنم ممکنه بعدها دوباره فایل های دیگه ضبط کنم یه سری مثال جیتری برشون بزنم چون این دیدن مثال ها توی کلاس ایپنیوتییس خیلی برای ما اهمیت داره چون اگه مثال زیاد ببینید شما در واقع در عمل میتونید مشکل خودتون یا دیگران رو حل کنید ببینید اول من میخوام کسی رو مثال بزنم که خیلی کار میکنه کسی که خودکشی میکنه حتی فعالیت فیزیکی زیادی داره خب کسی که خیلی خیلی کار میکنه حالا میتونه اصلا یه راننده تاکسی باشه میتونه کسی باشه که کارای کم ارزشو با درآمد پایین و با سختی زیاد انجام میده خب نگاه کنید پیشنگاره این چیه خب نگاه کنید کسی که خودشو میکشه برای پول چه پیش پیشفرسایی داره بله احتمالاً متوجه شدید پیشفرساش میتونه این باشه که انگار خودش از پول کم ارزش‌تر میدونه انگار پول داره دستش در میره که این اینقدر داره میدوه که پولو بگیره حس بی ارزش بودن و نداشتن ارزش درونی و همه اینها میتونه در واقع توی همین کار ساده نهادینه شده باشه و در واقع این طور هم هست و مشکل مردم اینه که معمولا نمیبینند کارهاشون رو یا با خودشون صادق نیستن میگن نه اصلا اینطور نیست من اصلا به خاطر پول خودم نمیکشم اما در واقع این کارو میکنن و بنابراین به هر شکلی که شما خودتون رو به فشار از سر حس کمبود دقت کنید یه موقع از شما علاقه دارید یه کاری و هی انجامش میدید خودتونو میکشید براش این علاقه انرژیش فرق داره وقتی شما خودتونو در فشار میذارید به خاطر این حس کمبودی اون خودش یه پیشنگارایی داره که شما رو میبره به تونل واقعیت رویدادهای منفی اتفاقات منفی و واسه همینه که آدمایی که بیشترین تحرک رو دارن تحرک تر که بر اساس کم بوده خصوصا منظورمه معمولاً من بدترین جایگاه دو جامعه دارم و از اون طرف توی گذر تاریخ هم می میبینید که شاهها کسایی بودن که حتی پشتشون میخارید در واقع یه کسی براشون اون پشت رو میخاروند نه اینکه که خودشون حتی دستشون هم تکون نمیدادن چون تکون خوردن کمتر دقیقاً انرژی ثروت و قدرت و ارزشمند بودن رو در خودش داره و بنابراین یه روش تغییر تونل هاتون اینه که دقت کنید کاراتون چه پیشنگاره داره مثال دیگه اینکه یه کسی ممکنه درمده خوبی هم داشته باشه ولی از یه جایی بعد یهو شروع می کنه به اینکه پولش رو خرج نکنه یا نگه داره قایم کنه و این انرژی کلید پیغام خودش داره کلی تونل واقعیت رو میتونونه استارت بزنه در واقع کسی که پول رو خرج نمیکنه یاخصیص شده یه جورایی بر اساس حس کم بود دقت کنید. یا موقع یکی حساب کتاب سرش میشه بر اساس ارزش میگه من پلم دوست دارم چیزهایی خوب بخرم. این عیبی نداره. اما کسی که بر اساس اون انرژی کم بود میاد این کار میکنه در واقع ورودی پول به زندگیش هم کم میشه چون خرج نکردنش ریشه در این داره که حس میکنه دیگه پول تموم شده دیگه پول وارد زندگیش نمیشه. همه این داستان ها. بنابراین حتماً به این دقت کنید. درباره این گفتیم که شاید دیده باشید اطراف خودتون خیلی ها رو که پول رو باهست کم بود نگه می دارن. خب، یا از اون طرف تو رابطه اشکی میشه گفت یه سریا دائماً در تلاشند که رابطه رو نگه دارن. و میدونید پیش فرض و پیش این کار اینه که انگار اون رابطه داره در میره، داره خراب میشه و واسه همینه که هر قدم زور میزنن آخر میبینن که اون رابطه تموم شد رفت. چون در واقع شما خودتون بدون اینکه حواستتون باشه یه جوری این رو رقم زدید که اون طرف فرار کند دستتون. چون سعی داشتید که اون رابطه رو نگه دارید و ورز این قضیه اینه که در واقع انگار شما بی ارزشید یا این رابطه قرار تموم بشه و اینها. از اون طرف حتی لباسی که شما میپوشید ممکنه پیشنگاری داشته باشه از نظر تاریخی، یا نظر انرژی تاریخیش. لباس شیک میتونه شما رو وارد انرژی ثروت کنه، حتی لباس بدی اگه بپوشید میتونه شما رو مستعد کنه. اینا قطعی نیست. یه نفری که خیلی هوشیاره میتونه گونی بپوشه اما الان ولی تو ثروت خیلی عالی باشه. اما ای اینا اینار هم به دقت کنید حتما هر وسیله ای که دارید هر جوری که در واقع رفتار میکنید کنید جالبه بهتون بگم حتی کسی که خیلی اصلا اصلا اینجوری هم که خب این پول تا نخوره الان این پوله رو که تازه گرفتم این تا نخوره و معمولا بچه هم زیاد این کارو شد میکنن و یا خیلی از آدم که مشکل مای دارن پول نو دوست دارن و به پول یه ذره س احترام زیاد قیلا که این تا نخوره و تازه بمون و این خودش میتونه دقیقا انرژی لک و کمبود رو رقم بزنه و باعث فقر بیشتر شه. یا یه سری ها ممکنه به فرض یه ماشین خوب دارن یه ماشین ارزونتر میرن میخرن که تو شهر با اون تردود کنن میگن مثلا حیفه اینو نمیشه برج های شلوغ و این خودش انرژی فقره دقیقا یعنی شما ایننگار خودتونو لایق نمیدونید که با این ماشین خیلی عالی برید یه جای شلوغ شهر و این میتونه تونل واقعیت فقر و بدبختی و دقیقا نازل کنه سر زندگی شما از اون طرف جالب بدونید خیلی اوقات این که شما عمل نمی کنید پیش انگاره و در واقع مفهومی که در عمقش میتونه داشته باشه اینه که شما باور ندارید به اینکه اصلا میتونید به اون چیزی که میخوایید برسید دقت کنید ما گفتیم که بفرض توی جذب متافیزیکی و اینها با استفاده از خود هیبنوتیزم خودتون یعنی اینکه خودتون هیبنوتیزم کنید تا یه چیزی جذب بشه لزوما شما نیازی به عمل ندارید ولی برخی اوقات این عمل نکردن شما نشونه‌ای از این هست که اصلا باور ندارید که چین چیزی میشونه براتون رخ بده یا اینکه کسایی رو تصور کنید که تازه با قانون نشاز باشن میشه بعد هی می‌شینن تصویرسازی می‌کنن هی زور میزنن هی زور می‌زنن پیشنگاره‌ی این دقیقاً برای اکثریت افراد اینه که اصلا حس میکنن یه کار سختیه انگار باید زور بزنم انگار باید خیلی با کیفیت سازی کنم تا اون چیزی که میخوام رخ بده و چون این پیش انگارش اینه یعنی شما انگار اعتماد ندارید که اون چیز میتونه به سادگی رخ بده شما نمیتونید حس قدردانی داشتن اون چیز در این لحظه رو داشته باشید چون قدردانی پیش انگارش اینه که انگار اون چیز رخ داده و همینجاست و واسه همینه که خیلی حس قدرتمندیه و از اون طرف حتی ما حس لتگو رو داریم اینم اشاره کنم بهش ببینید وقتی شما لتگو می یه چیزی رو رها می یعنی چیزی رو تصویر سازی میکنید و بعد رهان میکنید شما به سادگی دارید اعتماد میکنید دارید باور میکنید که انگار اون چیز رخ داده و این پیش انگاره های قدرتمند هستن که دقیقا میتونن باعث بشن شما در واقع به سرعت وارد اون تونل واقعیت مطلوب بشید که میخواید اون چیزی که